ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سروران عزیز و خزان بسیار ارجمند و گرامی مادران بزرگوار و خواهران و مادران محترم تقریبا به پایان ماه مبارک رمضان رسیدیم اکثریت مسلمانان روزهای رمضان را رو روزه گرفتند شب های رمضان را به نماز تراویح و بسیاری هم به نماز شب قیام اللیل و تهجد در این شبها مشغول شدند امید است که الله تبارک و تعالی عبادت بندگان خودش را در همه سطوح هم عبادت مردان را و هم عبادت زنان را به بارگاه خودش بپذیرد و همونطوری که در قرآن نوید داده که ان الله لا عمل عامل منکم من ذکر او انثا خدا پاداش هیچ انسانی را ضایع نمی کنه و هیچ عاملی را و هیچ کارکنی را هیچ زحمت کشی را ام از اینکه مرد باشد یا زن خدا حقش را نمی کند درودی ختم فرمید و الله رب العزت این سعادت را نصیب همه من شما بگرداند که ما بتوانیم از روزه رمضان و از عبادت رمضان راه توشه ای برای ادامه زندگی و برای ادامه ماهای سال همراه داشته باشیم دوستان الله تبارک و تعالی با بعثت حضرت رسول صلی الله علیه و وسلم انتخاب دین مقدس اسلام و اعلام تکمیل دین در آخرین لحظات دوران نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که فرمود: اکملت لكم دینكم و اتممت عليكم نعمتي و لكم الاسلام دینا من امروز نعمتم را نعمت هدایت نعمت ارتباط انسانها با پروردگار را بر شما کامل دین تون را تکمیل کردم نعمتم را کامل کردم و تا قیام قیامت آین اسلام را به عنوان دستور زندگی براتون انتخاب کردم شیوه دعوت پروردگار برای انسانهای سلیم و برای اطاعت از فرامین پروردگار در غالب اسلام عزیز و دوری از کجی و انحراف و از طرف دیگه خدای تبارک و تعالی حاکمانه و شاهانه و مقتدرانه هم اعلام میکنه. که بیشوز اون آیینی که من در قالب اسلام با زبان شیوا محمد رسول الله محمد امین صلی الله عليه و نازل کردم هیچ مسیر زندگی و هیچ مکتب فکر دیگری را به عنوان آیین زندگی بشریت تا قیام قیامت از هیچ کس نمیپذیرم و من یاب غیر الاسلام دین فلن يقبلن ختم فرمایید دوستان مطر. جاودانگی دین مقدس اسلام و تفاوت آخرین دین الهی با سایر ادیان در اینه که حیطه گسترش دین مقدس اسلام بر همه عباد زندگی بشر هست تمام شعونات زندگی بشر را اسلام عزیز دربر گرفته و برای هر بخشی از زندگی انسان برنامه دارد دستور دارد الگو دارد هنگام بیست حضرت رسول صلی الله علیه وسلم زندگی جامعه بشری در ابعاد مختلف مختل شده بود دوچاره انحراف و دوچاره سردرگمی جامعه بشری در شعونات مختلف زندگیش شده بود. هم در بخش اعتقادات مشکل داشت. هم در بخش معاشرت مشکل مکی را خوهران محترم تشکیل میدن قشری که از یک طرف محرومیت زیادی دارد و از طرف دیگه نقش بسیار ای در سازدنگی ای بشری یا در تخریب جامعه بشری داره زن اگر با دستورات رب العالمین آشنا بشه میتونه مشیر خوب میتونه معاون خوب میتونه وزیر خوبی برای مرد باشه میتونه بنایی برای اصلاح فرزندان سالم و تحویل دادن اونها به جامعه باشه و اگر خدای نخسته این قشر با دستورات اسلام آشنا نشد جایگاه خودش را تشخیص نداد تمام ساختمان زندگی اجتماعی و خانوادگی بشر و انسانها و بالاخص خانواده مسلمان که بر مبنای تربیت مادر نسبت به فرزندان بنامی شود فرو می ریزد. اولین ارزم هرچند من این حرف را مستقیم به خاهران خطاب میکنم ولی معناش این نیست که مردان از این قضیه مستثنا هستند اولین ارزم نسبت به خاهران اینه که مجوزی که برای خاهران برای آمدن به مسجد صادر شده نه برای اینکه اینها بیاین اینجا نماز تراویح فقط بخونن نه بلکه برای اینکه با دستورات اسلام آشنا بشن با احکام الهی آشنا بشن و به عنوان یک مسلمان آگاه و متدین خدا را با شناخت عبادت بکنند لذا بسیار مهمه که خاهران محترم در خانه‌ی به نماز توجه ویژه و اهمیت ویژه قائل بشن اگر مادران ما و خواهران ما فرزندان مسلمین دختران مسلمین در خانه نماز برپا بدارند و به طلاوت قرآن مشغول بشن ما پدیده و معزلی به نام بدهجابی و بیهجابی دیگه نخواهیم داشت بیهجابی سرچشمه گرفته از یک ناآگاه بودن زنان به مسائل دینی دو فساد اجتماعی در جامعه و فراهم کردن زمینه فساد توسط انسان‌های حرزه و بلا تشبیه لذا برای اینکه مادران و خواهران ما از این منجلاب بیان بیرون قدم اول اینه که زنان باید نسبت به نماز در خانه‌هایشون بسیار اهمیت قائل بشن بیشتر اوقات مشاهده شده که در قشر زن نسبت به عدای نماز ضعف و سستی هست متاسفانه مردان بزرگوار پدران عزیز برادران معترم همسران گرامی هم نسبت به این مسئله بسیار با تساهل و با تسامح و با رعایت نکردن مسئولیت برخورد میکنند دو زنان باید به آموزش قرآن عظیم الشان اهمیت بدن چرا 80 درصد 90 درصد زنان با قرآن عظیم الشان آشنا نباشند تلاوت و الفاظ قرآن عظیم الشان را بلد نباشند در حالی که ما در شهری زندگی میکنیم که این شهر به نام شهر حافظان قرآن معروف باشه در شهری زندگی میکنیم که بیشترین تعداد مسجد را در این شهر ما داریم به عنوان یک شهر اسلامی به عنوان یک شهر دینی بیشترین تعداد علماء را به حمدالله شهر دارد ولی زنان از تعلیمات دینی محروم باید باشن چرا؟ خوهران باید از همسرانشون از پدران و برادرانشون بخواهن از ائمه مساجد خواسته بشه برای خوهران برنامه هفتگی در مساجد در محلت گذاشته بشه تا اونها با, هم با احکام دین عشنا بشن هم با دستورات اسلامی عشنا بشن یکی از مسائلی که زیر بنای صحت و سلامت جامعه را تشکیل میده، بحث حفظ افت هست مبنای این افت و سنگ بنای این افت بحث حجابه اگه حجاب امر کوچیکی و مسئله کوچیکی می بود متاسفانه ما هم مردان از این مساله بهترند، هم زنان از این مساله بهترند که روز قیامت ماد و چ... این آیه قرآن از مسلمان قرار نگیریم که قرآن میگه کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. بار به مساله حجاب تذکر داده میشود، ولی بعض هم میبینیم جامعه ما بیداد میکنه بی حجابی. بلا تشبی با آرایش میاد بیرون با تلاح و جواهرات میاد بیرون با لباس های گران قیمت و با لباس های مزین که خود این لباس بدترین زینت با لباس های نازوک نیمه برهنه میاد بیرون و طبیعیه که اون جامعه که به دستور سریح قرآن عظیم شان توجه نکنن روی خوشیره نمی بینه زر فرمان قرآن چه رخ به جای خوشی ناخوشی یافتیم شعار همه کینه و جنگ شد به ما عرصه زندگی تنگ شد مردم امروز گرسن نیستن سیرن ولی بسیاری از ناهمجاری هایی که در جامعه هست چرا برای اینکه ما به فرمان های قران عظیم شانه توجه نمی کنیم حجاب دستور صریح قرآن عظیم شانه هم حجاب پوشش و هم حجاب نگاه هر دور قرآن عظیم و به زنان خطاب میکنه تذکر میده به مردان خطاب میکنه یاداور میشه هم در حجاب رفتاری قرآن عظیم و با سراحت میگه و قل للمؤمنین یغضو نب... من ابصارهم و یحفظو فروجهم و به زنان هم با سراحت میگه وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْزُزْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَذْنَ فُرُوْجَهُنَّ زنان باید در نگاهشون نسبت به مردان نامارم مراقب باشن مواظب باشن و عفتشون را حفاظت بکنن امروز در جامعه متاسفانه در اثر رعایت نکردنی این اصل قرآن یک عذاب الهی در جامعه مشاهده میشه گاهن در گوشه گوشه مراکز مسلمان نشین خبر از زنا میرسه. تو این سفری که به طرف بندر جاست داشتیم حرفی گفتن که اصلا مغز و استخان انسان می سوزه گفتن یه بلاتش بی یه برادری با خوهرش زنا کرده العیاز بالله حرگا که دستورات اسلام رعایت نشه حجاب رعایت نشه ما از خودمون بیایم برای خودمون دستور زندگی درست بکنیم و بین دختر خاله و پسر خاله حجاب نباشه بین پسر عمو و دختر عمو حجاب نباشه و اون تعبیر عمومی که من شما تو زبان بلوچی شیبرا گوارم این باید رعایت بشه عزیزان گرامی قرآن عظیم و نسبت به ناهنجاری های اجتماعی برای ما به جای درمان حکم پیشگیری رو میده میفرما ولا تقرب و زنا آمردم نزدیک زنا نرن اینکه این که قرآن اینطور خطاب میکنه یکی از دستوراتش اینه که حجاب را رعایت بکنه زن به بپریزه از که لباس تنگ و لازوک و ارز کنم که کوتاه بپوشد وإلا حضرت رسول صلى الله علیه و سلم با صراحت فرمودند نساءن کاسیات ان عاریات مائلات ان ممیلات رؤوسهن کأسنمه البخت موهای سرشون را مثل زنهای غربی پشت گردن جمع میکنه پشت موی میزنه زیورالات را بر تن میکنه به بازار میایاد پیغمبر میفرمایند که لن یجدن ريح الجنه و الريحه ها لکذا و کذا مردان وایاد سر به گریبان فرو ببرند ببین اون مادری اون خاهری اون دختری که در بازار میگرده چه نسبت با او داره ضمن اینکه ناموس مسلمین عزت مسلمین عفت مسلمین نسبت به همدیگه یکی است ولی باز در قالب مسئولیت خانوادگی که حضرت رسول صلی الله علیه و فرمود الا کلکم را و کلکم مسئول عن رعیت ما نسبت به این قشر مظلوم محروم که مثل برده در خانه دارن کار میکنن. لباس باید بشوره، غذا باید آماده بکنه. بچه را باید شستشو بده و تربیت بکنه. ولی ما نسبت به تعلیم احکام دین به این زنان توجه نکنیم. نسبت به آموزش احکام دینی اونها توجه نکنیم. این یک بخش سروران گرامی، از حقوق العباد که رابطه دو طرفه داره یک مسئولیت زنان نسبت به خدای خودشون داره یک مسئولیت مردان نسبت به خدا و نسبت به زیر دستان داره یکی از مسائل حقوق العباد مسئله فرزندانه ما جامعه ما خوشحال میشه که الحمدلله خدا به من پسر داده خدا به من دختر داده و قطعا فر داشتن فرزند صالح بزرگترین سرمایه و یکی از بزرگترین نعمت های رب العالمین توی هیچ شکی نیست اما اگر فرزند حق فرزند رعایت نشد به تعلیم و تربیت مهمترین حق فرزند از همه حقوق مهمترین حق فرزند تعلیم و تربیت ها. فرزندی که به تعلیم و تربیتش کسی رسیدگی نکنه من معتقدم که اون اون پدر اون مادر نسبت به فرزندش کوتاهی کرده و فرزندش را خودکشی کرده وقتی فرزند از قرآن از ایم و چیزی بلد نباشه از احکام دین چیزی بلد نباشه از سیرت رسول الله چیزی بلد نباشه از علم و سواد چیزی بلد نباشه این فرزند چی ببار میاد؟ این فرزند فردا معتاد ببار میاد و لا تقتلو خدا خدای تبارکتالا می فرماید شما فرزندنتون رو نکشید فرزند را بیسواد به بار آوردن، فرزند را بیدین به بار آوردن، فرزند را بیلم به بار آوردن، فرزند را به حال خودش رها حا کردن. که تو خانه این فرزند، این دختر، این پسر، تا ساعت یک شب می نشینه و فیلم و سی دی و مبتزل نگاه می کنه. اتاقی مخصوصی داره. پدر اونجا نمی ره. پدر ماشاالله مسجد را گرفته. کاری اون کار نداره. کی با این فرزن رفت آمد میکنه کی داخل خانه میاد کی بیرون میره این فرزن کجا میره با که نشست و برخواست داره ای نماز میخواند یا نمیخواند به این کار نداره این یکی از ناخنجاری های اجتماعی است خوبه در این ساله های اخیر احسان رب العالمین شده هشتت درصد جمعیت مساجد را جوانان عزیز تشکیل میگن الحمدلله اما کم نیستن اون جوانانی که تو پارک ها زایش شدند، کم نیستن اون جوانانی که به کنج زندان افتادند، کم نیستن اون جوانانی که به دام اعتیاد افتادند، کم نیستن اون جوانانی که به چشم ترانی مشغولند، کم نیستن اون جوانانی که الیازب بالله الیازب الله بزنام امتلاش شدند، کم نیستن اون جوانانی که به شراب نوشی مشغول شدند. این فرزندان مسلمانان، اینا سرمایه های دینن، اینا سرمایه ها و بازوان توانایی برای اسلام عزیز میشن. نسبت به تعلیم فرزندانتون هم در بعد علوم شریعت هم در بعد علوم تجربی و علوم عصری باید حمت بگو بارم مسلمانم. این تجمع ارزشش بی اینه که ما نهنجاری های اجتماعی من را برطرف بکنیم باید جامعه دینی جامعه مسلمان جامعه که افتخار داره اطاعت از شریعت را اون جامعه باید فرق بکنه با جوامه دیگر اگه قرار بشه تو جامعه ایما هم بی اعتیاد بیداد بکنه تو جامعه ایما هم سیدی ابتزال بیداد بکنه تو جامعه ایما هم شراب بیداد بکنه شراب را به عنوان یک افتخار به عنوان یک پیشرفت به عنوان یک ترقی العیاض بالله جشن عروسی برگزار بشه آه کارتون کارتون شراب بیارن اونجا مصرف بشه عملی که لعنت پروردگار بر کسی که شراب را میاره مصرف میکنه نگهداری میکنه خرید میکنه فروش میکنه یه جای یک روزی نشسته بودیم کسی تعنی ایزد به شما ملت برومند من این مطلب را به خود عزیزانم در چهره رسولی عداواری کردم یه شبی ختم اونجا آ در فلان قسمت شهر 50 آدم اینجا تو این شهر برای چی میمونه؟ چه انگیزه برای موندن داره؟ برا مثلا مشخصا نام گرفتون برا چهار رسولی که از این طرف دستش رو بگیرین، نوار میخوای از اون طرف دستش رو بگیرین، سیدی میخوای از اون طرف دستش رو بگیرین که بلا تشویق طریقت میخوای از اون طرف دستش رو بگیرین که شراب میخوای. ولو اینکه این 2% این باشه، 3% باشه. حالا ما زن ما به شما مسلمانان و به مؤمنین اینه که این خیلی ناچیزه ولی به قال حضرت مولانا اشرفالی تانوی رحمت اللہ علیه اخگر اخگره سوزنده است کوچک باشه یا بزرگ همین اخگری کوچک هم بالاخره وقتی آتش روشن شد تمام جامعه رو به فساد میکشن و میسوزاند لذا نسبت به سرنوشت فرزندانمون اگر در هر اندازه عابد و عبادت گذار و نماز گذار باشه چقدر عمر میکنه 50 سال شست سال هفته سال بعد فنا میشه نسل بعدیش پنج تا چار تا ده تا فرزند از پشترش گذاشته اینها چی شدن پدر مسجد رو آباد کرده پدر یک نفر مسجد رو آباد کرده ده تا فرزند خدا ناخست اللہ و گذاشته که اینها ها می کدر عباد بکنند اینها فساد اجتماعی بکنند بخش ثومه سخنم وقت نواز هم رسیده بخش سفوم سخنم باب فرزندان تو این ماه مبارک رمضان به کسرت گلایه میاد از طرف فرزندان این یک رابطه دو طرفه داره ما باید به این مطلب هم پدران و مادران هم جوانان عزیز به این مسئله خوب دقت بکنن به کسرت نامه می نوشتن پسران نامه می نوشتن دختران نامه می نوشتن که پدر و مادر در مساله ازدواج ما کوتاهی میکنن در ماه مبارک رمضان یک دختری نامه ای نوشت که من به سن 27 سالگی رسیدم هر بار که خواستگار می آید پدرم به یک بهانه او را رد میکنه یا پسران را مجبور به ازدواج اجباری بکنن یا دختر را مجبور به ازدواج اجباری بکنه بله در این, در این شکی نیست که باید برای پسر برای دختر خاستگار و نامزده هم کف و هم مثل و متعادلی پیدا بشه اما همه ملاق نباید این باشه که این چون ماشین ای ندار این سروتی ای ندار این فلانی ای نداره نباید این کار انجام بگیره این ظلم نسبت به این ازدواج های خیابانی مورد تایید نیست که پسر یا دختر تو خیابان راه بیفته از دم دانشگاه رد بشه از دم بلاتش به مکتب خانه رد بشن با هم قرار بگزن و با هم ازدواج بکنن این مردوده این بده اما این هم قابل قبول نیست که باید پسر را یا دختر را در یک شرایط و در تنگناه بمبس قرار دادن که تن به اون ازدواج اجباری بده این ازدواج اجباری نتیجهش اش که بعد از دو بعد از سه ماه منجر به طلاق بشه یک فرزند دو سال زندگی کرده یک سال زندگی کرده منجر به طلاق شده فرزند طلاق هم پشت سر گذاشته اون خود اون دختر زندگیش بی بی‌سر و بی سامان این پسر زندگیش بی بی‌سر و بی سامان یکی دو تا بچه هم گذاشتن حال درست در زندگی یک اتفاقی بیفته. علی اتفاقات را الله تبارک تعالی گفته شما همیشه ریشیابی بکنید شما به حد اقل اونها را برسونید گای هم در واقع من چون مبنا را بر این گذاشتم که تو این ده دقیقه رب و ربع ساعت در باب حقوق العباد صحبت بکنم گای زنان به کثرت شکایت میکنن نامه می به حضرت مولانا به علمای دیگر آه. و همین 4 5 شب پیش رفته بودم چهار رسولی ختمی بود جمع بزرگی از زنان اونجا این نامه نوشته بود نامه هنوز تو جیبم که هم ای مولوی جامعه ما از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم غیر از زن گرفتن دیگه چیزی عادت نکرده زن میگیره و زن دیگر را با چهار تا فرزند و پنج تا فرزند به نام خدا رها میکنه این قابل قبول نیست که یک مرد بگه من هزینه زندگی, زن زندگی زن را می نه زن علاوه از نان و نفقه و مسکن نیاز فطری داره نیاز این بچه نیاز به سایه پدر داره این بچه باید سایه پدر رویش باشه تا تربیت بشه ویلی این زن جوانی را که با پنجتا با چرتا فرزند مثل هم سایه راها کرده اگر علیاز بالله علیاز بالله فردا این زن به بی کشیده شد این دختری که سایه پدر را بالای سر خودش نداره به بی کشیده شد اون بچه به فساد کشیده شدی این مسئولش کیست مسئولش این پدری است که نسبت به سرنوشت فرزند خودش به خاطر بلاتش به بلاتش به حوصرانی به خاطر رازی کردن خواهشات خودش اون زندگی اون انسان را مثل جهنم تبدیل به جهنم کرد. اون زندگیش اگر خراب بشه فردا یک جامعه در مثل ویروس و مثل میکروب تمام جامعه را دربار میگیره و خراب میکنه نصا برادرانی که افتخار اهل دیانت را داره افتخار عبادت را دارن افتخار نماز را دارن افتخار روز گرفتن را دارن باید در باب حقوق العباد و بالاخره در باب زنان که هم قرآن عظیم شانت توصیه میکنه و عاش روحن بالمعروف شما با زنان به نیکی رفتار بکنید حق زن را رعایت بکنید و هم حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در آخرین توصیه یکی از هایی که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن در باب زنان بود فرود در باب این زن اینی که با نام خدا برتون حلال شده قبل از خطبه نکاح زن بر انسان حرامه با ایجاب و قبول و با اون خطبه نکاح که حرام میشه یعنی چی یعنی این مرد با عهد و پیمان نام الهی این زن را در خانه میاره باید در باب پوشاک عدالت بشه باید در باب خوراک عدالت بشه در باب بیتوتت و نوبت باید عدالت بشه این قابل قبول نیست از یک مردی که آ یه را گرفته برای گوسپنداش برده کوه گذاشته مایتا یک گشته رو سلی جنتوشی که بیایی صد ازار عوضوی تیخرج قبول نیست یا همینجا در شهر یا در جای دیگه کسی که دوتا همسر داره تعدد زوجات داره هم باید در خوراک هم در پوشاک هم در لباس تعادل برقرار کنه هم نوبت را باید رعایت بکنه منگاهی ناراحت میشه میگه مرد باید کور میشه نوبت را رعایت بکنه قرآن عظیم الشن با سراحت میگه که و این خفتم الله تا این آیه قرآنه گفته شخص نیست آیه قرآن عظیم و که و این خفتم الله تعالی فواحده اگر کسی احساس میکنه از نظر عاطفی از نظر جسمانی از نظر مال از نظر روابط اجتماعی نمیتونه حق زن را اداره بکنه و رعایت بکنه و ادب بکنه فواحده تن یک سر بگیره تا بتونه به زندگی او سر و سامان بده به بی تربیت او فرزندش برسه به حق او حقوق او را ادا بکنه لذا همون اندازه عزیزان گرامی که نماز برای ما مهمه همون اندازه که روز گرفتن برای ما مهمه رعایت کردن حقوق عباد مهمه این قاتل ها و این گروگان ها و بسیاری از ناهمجاری‌های دیگه که در جامعه پدید می این, این در اثر رعایت نکردن حقوق اولیه انسان هست خدای تورتالا اینا را بعد به عنوان عذاب بر اون جامعی که حقوق اولیه حق خدا را و حق بندگان خدا را رعایت نمی کنم خدای تورتالا به عنوان سیلی و به عنوان تحقیر و به عنوان سرکوفت بر اون جامعی اینا هنجاریه دیگر را و تحميل میکنه چون حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که فرمود وقتی در یک جامعه گناهی صورت می گیره یک شخصی گناهی مرتکب میشه این گناه مثل آهن رو با گنای دیگر رو میکشه اون گناه گنای دیگر رو میکشه و نتیجه میشه که دلها سیاه میشن دلها مهر میخورن حالا ممکن برای فرد صدق بکنه، ممکن ممکنه برای یک جامعه صدق بکنه. الله توار تلاب به من شما توفیق بده که ما اسلام را در همه آباد بر اسلام عمل بکنیم و مسلمان کامل باشیم و آخر الدعوان علی الحامد لله